فصل هفتم. فردای آن روز وقتی زری با آب و تاب از مهمانی روز قبل می گفت، ته دلم اصلا حس نکردم که دلم از نرفتن می سوزد تازه از اینکه پیش محمد مانده بودم بی نهایت هم بودم آن مهمانی به زری هم خیلی خوش گذشته بود و هم برایش سرنوشت ساز شد چون چند روز بعد از طرف امه پیغام دادند که یکی از همسایه هایشان برای خاستگاری زری بیایند. خاستگار پسر یکی یک دانه خانواده ای و خوشنام بود که در رشته پزشکی در انگلیس تحصیل می‌کرد. قرار خاستگاری که گذاشته شد هرچه من و زری ذوق میکردیم محمد بیمیل و مردد بود و محترم خانم دلشوره داشت. وقتی از محمد علت تردیدش را پرسیدم خیلی راحت گفت زری سنش کمه با تعجب و حیرت در حالی که فکر می کردم زری هم سن من است فقط با طلبکاری نگاهش کردم و چیزی نگفتم با خنده گفت میدونم میدونم دردسر همین دیگه الان اگه من این حرفو بزنم همه همین فکر رو میکنن مطمئن نبودم فکرم را درست حدس زده یا نه. مردد پرسیدم. چه فکری؟ همین که فکر میکنی زری هم توست مگه طلب کارید به خاطر همین نبود؟ ماتم برد. به شوخی بازویش را نیشگون گرفتم. و با اعتراض گفتم. کی گفته تو همیشه سر از فکرای من در بیاری؟ شاید من نخوام تا بفهمی به چی فکر میکنم. همانطور که سعی می کرد دستهایم را نگه دارد خندان گفت « اولا که واضح بود تو به چی فکر می تازه غیر از من کی باید بدون توی فکر تو چی میگذره؟ ای شاید من نخوام یک دفعه با لحنی که دیگر تقریبا جدی بود گفت: مگه چیزی هم هست که تو بخوای از من پنهان کنی؟ نه ولی دوست دارم خودم بهت بگم. نه اینکه تو همه چیز رو خودت بفهمی. اینجوری احساس خنگی میکنه. در حالی که با محبت محکم در آغوشم میگرفت و میخندید مثل کسانی که میخواهند بچه ی لوسشان را مجاب کنند گفت: «عزیز دلم: چرا فکر نمی کنی از بس دوست دارم و از بس تو ماهی و بیغلاقش؟ فکرتو میخنم. این چه ربطی به خنگی داره؟ شانه‌هایم را بالا انداختم و گفتم نمیدونم راستی حرف تو حرف نیار اول بگو ببینم مگه زری هم سن من نیست چرا میگی زود ازدواج کنه الان اگه بگم ما فرق میکرد هم تو و هم بقیه میگین چه فرقی مگه نه ولی مهناز فرقش اینه که من اگه تو رو نمیشناختم یعنی اگه بهت علاقه پیدا نکرده بودم غیر ممکن بود توی این سن و با دختری هم سن تو ازدواج کنم. زرق هنوز خیلی وقت داره. اگه درسش رو تموم کنه بعد ازدواج کنه خیلی بهتره. در حالی که وانمود میکردم بهم برخورد برخورده گفتم جنی ویلیام اجبا نداشتی با منو توی این سن ازدواج کنی؟ رویم را رو برگرداندم. سعی کرد صورتم را به طرف خودش برگرداند و گفت خود بد جنست میدونی که اجبار داشتم. با همان حالت قهرالود پرسیدم میشه به چه اجباری؟ هنوز چانه ام را با دستش نگه داشته بود. توی چشمانم خیره شد و گفت تو نمیدونی؟ چرا من در هیچ حالتی طاقت نگاه های مستقیم محمد را نداشتم؟ نمیدانم؟ انگار بند دلم پاره شود دلم هوری فروریخت و احساس کردم چیزی نمانده چشمهایم غرق اشک شود؟ دلم تاب نمیآورد؟ سرم را پایین انداختم و ته دلم فکر کردم؟ خدا رو شکر که مجبور شدی؟ محمد دوباره پرسید؟ جواب منو ندادی؟ با حالت قهر از جایم بلند شدم به سمت در رفتم و رویم را برگرداندم و جدی گفتم با اینکه علت اجبارتو نمیدونم؟ مکس کردم دیگر در را باز کرده و تقریبا بیرون از اتاق بودم چند لحظه به محمد خیره شدم که منتظر بود و جدی نگاهم میکرد و فکر میکرد کرد واقعا قهر کردم و ناراحتم. بعد مثل بچه های تخص با صدای بلند و خنده گفتم ولی خود رو شکر که مجبور شدی محمد, محمد نیمخیس شد که دنبالم کند در را بستم و فرار کردم من شاخه ترد پیچکی بودم که آویخته به وجود محمد شکل می و لذت این آویختن با سرشتم قرین میشد. قافل از اینکه زندگی پیچک وقتی به چیزی آویخت جدای آن امکان پذیر نیست و اصلا حیات پیچک یعنی آویختن روز خاستگاری زری رسید. خانواده ای محترم و متدین و فهمیده بودند که به گفته خودشان مهمترین ملاکشان برای همسر پسرشان شرافت و انسانیت بود. آن روز داماد که اسمش مسعود بود با مادر و دوتا از خواهرهایش برای خاستگاری آمده بودند. مادرش زنی خوشرو بود و خواهر بزرگش برخلاف خواهر کوچکتر زنی سر و زباندار و شوخ. خود مسعود هم پسری بود قد بلند با قیافهای معمولی که در نظر اول خیلی کم رو به چشم می آمد. ولی وقتی شروع به صحبت می کرد ترز صحبت سنجیده و با وقارش، به سرعت باعث می شد آدم با احترام به او نگاه کند آنها با صداقت تمام گفتند که مسعود یک زندگی دانشجویی دارد و چون در رشته پزشکی تحصیل می کند حداقل تا هشت یا نه سال دیگر به ایران برنمیگردد گردد و در طول تحصیلاتش ممکن است زندگی چندان راحتی نداشته باشد و مسعود تنها به دلیل تدین تصمیم به ازدواج گرفته است و سازگاری و همراهی مهمترین خواسته ایست که از همسرش دارد شخصیت خانواده و خود مسعود آنقدر دلنشین بود که راه را بر مخالفت و انتقاد بست و زری تقریبا از همان جلسه اول دلباخته شد و چون مسعود کمتر از دو ماه برای رفتن وقت داشت کارهای ازدواج آنها هم درست مثل من و محمد سریع انجام شد و قرار عقد را گذاشتند همان روزها بود که با دقت در احوال امیر مطمئن شدم که از اول هم نظری به زری نداشته و این حدس که فکرم در مورد علاقش به سریا درست بوده بیشتر در ذهنم قوت گرفت زندگی زری هم درست مثل من در مدتی کوتاه عوض شد در زمانی کمتر از یک سال ما هر دو از حالت دو دوست و دو هم کلاسی در آمدیم و از عالم بچگی جدا شدیم زری زنی شوهردار میشد که به کشوری دور و غریبه میرفت و من در کنار محمد به کلی فراموش کرده بودم که سبب علاقه اولیه ام به خانواده آنها اصلا وجود زری بوده است دوباره انگار توی خانه ما هم عروسی باشد برو بیا و شروشوغ بود جشن عقد زری در حقیقت عروسی او هم محسوب می شد. چون شوهرش نمی توانست در فاصله پنج شش ماه بعدی که کار زری برای رفتن درست میشد دوباره برگردد. به همین دلیل کارها بیشتر بود و جشن مفصلتر و ما چه و اشتیاقی داشتیم. از مدرسه که برمیگشتیم تمام وقتمان را کار و بحث برای روز عقد می گرفت. البته تا وقتی که محمد نبود من آزاد بودم زمانی که برمیگشت خواسته و ناخواسته مجبور بودم بروم سراغ درسهایم یادش <تصفيق> خیر. هنوز لباسی را که برای عقد زری دوخته بودم نگه داشتم. با چه اشتیاقی آن لباس را به اکرم خانم سفارش دادم این اولین عروسی و اولین باری بود که قرار بود به عنوان زنی شوهردار توی مجلسی شرکت کنم و می توانستم به جای لباسی ساده و دخترانه یک لباس زنانه از آن مدل‌هایی که همیشه دوست داشتم بدوزم. با مشورت اکرم خانم و البته دور از چشم محمد مدل و پارچه و رنگش را انتخاب کردم. روزی که برای پرو و لباس رفتم چقدر رازی بودم. تا آن روز چنین لباسی نداشتم. یک لباس دکلته تنگ و چسبان بود که دامنی کوتاه تا بالای زانو داشت. فرویش یک کت نیم‌تنه کوتاه با آستین های شمشیری و یقه ایستاده به رنگ مشکی. وقتی تنم کردم، زری که خودش هم داشت لباسش را به کمک اکرم خانم می پوشید، زده گفت: مهناز، چقدر بهت میاد.» چقدر قشنگ شدی؟ فقط خدا کنه محمد ایراد نگیره و بزاره بپوشی. با تعجب گفتم چرا نظاره همه زن هستن دیگه؟ اما ته دلم کمی شور افتاد. یعنی ممکن بود به خاطر سینه باز و کوتاهیش ایراد بگیره ولی خیلی زود حواسم جمع لباس زری شد و موضوع را فراموش کردم. زری بدون آرایش هم توی لباس عروس خیلی زیباتر از قبل شده بود. خلاصه آن روز هر دو دومان قرق شادی بودیم و مرتب از اکرم خانم تشکر می کردیم. روز بعد هم همراه مادر و مریم برای خرید کفش رفتم و برای اولین بار کفش پاشن بلندی که به سختی می توانستم با آن راه بروم خریدم. همه این کارها را دور از چشم محمد می کردم. و هر وقت می پرسید مهناز بلاخره لباس تو چی شد؟ میگفتم سب کن روز عقد می بینی چی شده. بلاخره روز عقد زری رسید. اواخر بهمن ماه بود و برف ریز و سنگینی که از شب قبل میآمد هوا را خیلی سرد کرده بود. قرار بود خانه ما مجلس مردانه باشد و من مجبور بودم لباس و وسایلم را بگذارم خانه هاجاقا. چون وقتی از آرایشگاه برمیگشتم مسلماً خانه شلوغ بود و نمی‌توانستم به خانه خودمان بروم لباسهایم را توی اتاق محمد گذاشتم و رویش را پوشاندم که اگر زودتر از من آمد لباس و کفشم را نبیند هیچ وقت هیجانی که آن روز داشتم فراموش نمی‌کنم شروع و التهابی بی‌اندازه که همراه انتظار شیرین از این پنهانکاری در وجودم رسوخ کرده بود و مرا به وجد می آورد. دو هفته یا بیشتر بود که منتظر این روز و دیدن عکسالعمل محمد بودم. میخواستم ببینم وقتی مرا توی لباسی دید که خودم آنقدر دوست داشتم، چه واکنشی نشان می‌دهد. بارها توی ذهنم صحنه برخورد او را در حالی که چشم‌هایش از تحسین می‌درخشید، مجسم کرده بودم. تصور جو خوردن محمد از زیبایی لباس و حسن سلیقه در انتخاب آن برایم شوقی بی نهایت داشت که به هیجانم می آورد. آن روز محمد مرا به آرایشگاه رساند و گفت که ممکن است برای برگشتن خودش نتواند دنبالم بیاید و من باز بیشتر خوشحال شدم. اینطوری وقتی کاملا آماده می شدم مرا می دید. با امیر برگشتم خانه. فقط توی دلم خدا خدا میکردم کردم که محمد هنوز لباسهایش را نپوشیده باشد. وقتی چشمم به کتوشه الوارش که هنوز روی تخت بود افتاد خیالم راحت شد. با عجله لباس و هایم را پوشیدم. دستهایم به گوشم بود و داشتم با گوشوار کلنجار میرفتم که در اتاق به ضرب باز شد و مرا از جا پراند. برگشتم. محمد بود. من که هنوز دست هایم به گوشم بود، با شوق و خوشحالی سلام کردم و با حیجان منتظر اکسال عمل او شدم. ولی محمد مثل برق گرفته ها، همونطور که دستش به دست گیره بود، خیره خیره مثل کسانی که سخت جا خورده اند نگاه می کرد. بعد از چند لحظه، یک دفعه برف روخته و عصبانی و با نگاهی خشمگین و صدایی بلند تقریبا فریاد زد. این چیه پوشیدی؟ اینجوری میخوای بری بیرون؟ این لباسیه که دو هفته استری ازش تعریف میکنی؟ گیج و درمانده شدم اصلا سر در نمی آوردم که منظورش چیست همانطور دستهایم بگوشم بود بحت زده و بی حرکت مانده بودم صدایش آنقدر بلند و لهنش آنقدر تند بود که با هر کلمه انگار سیلی محکمی به صورتم میخورد احساس می کردم گونه هایم آتش گرفته و می سوزد. خشمی که از چشم های شعله می کشید آن قدر سوزان بود که جرأت حرف زدن را از من گرفته بود. او هم دوباره دهانش را باز کرد ولی انگار خودش هم می نتواند جلوی عصبانیتش را رو بگیرد. رویش را رو برگرداند در اتاق را محکم به هم زد و رفت. چه شده بود؟ مگر لباسم چه عیبی داشت، چرا سلیقه او با همه و با خود من آنقدر فرق داشت، چرا همیشه عملش برخلاف انتظارم بود، جای شوق و اشتیاقم را قصه ای تو با انزجار گرفت، انزجار از خودم، از لباسم و از همه انتظار و اشتیاقی که برای دیدن او و عملش داشتم. دندانهایم را از ناراحتی به هم فشار میدادم تا جلوی عشقهایی را که به چشمم هجوم می آورد بگیرم. رویم را برگرداندم و چشمم به خودم توی آینه افتاد و یک آن با حیرت فهمیدم فریادش برای چه بوده. هنوز کتم را نپوشیده بودم و حتما او فکر کرده بود لباس من تنها همان است و میخواهم با آن سینه و سرشانگه برهن بیرون بروم. سرم را بالا گرفتم که اشکم سرازیر زیر نشود. از لباسم و از خودم بدم آمده بود. کاش می توانستم برگردم خانه خودمان. برای چند لحظه دلم خواست هیچ کس. حتی محمد را هم دیگر نبینم. بد جور توی زوغم خورده بود. حس بدی داشتم. احساس آدم های ابلهی که به خاطر هیچ و پوچ هیجانی بینهایت دارند. و دست آخر به تمسخر گرفته می میتوانست می توانست از من سوال کند. حتی اگر لباسم فقط همین هم بود، چه حقی داشت اینجوری لگت ملم کند؟ وجودم را قصه و خشم با هم گرفته بود. حس آدمهای سیلی خورده ای که حقارت تحمل سیلی از پادر می آوردشان، نه درد آن. توی گرداب رنجی که برایم ناشناخته بود، دست و پا میزدم. تا حالا محمد را آنطور طور گین و با آن لحنه کوبنده و از همه بدتر رو گردان از خودم ندیده بودم. هیجان و عجلم برای اینکه مرا زودتر ببیند، باعث شده بود از خودم بدم بیاید. رفتار او توهینی بی نهایت برای قلب مشتاق من بود که مرا از پا در می آفر. دوباره در باز شد برخلاف انتظارم محمد برنگشته بود محترم خانم بود که شتاب زده می پرسید. محناز جون هنوز حاضر نشدی مادر قربونت برم زود باش همه اومدن مهمونها سراغ عروسهام رو میگیرند تو بیا آبروم و بخر خودم رو جمع و جور کردم و پرسیدم مگه الهه نیومده ای مادر، اون بود و نبودش غیر از دق دادن من چه فایده ای داره. اومده مثل برج زهر توی اتاق مهدی بست نشسته. بعد در حالی که بیرون می رفت، اضافه کرد. الهی فداد شم، فقط زود باش. کتم را برداشتم، حتی نیم نگاهی هم به خودم توی آینه نکردم. دیگر دلم نمی نه خودم نه آن لباس را ببینم. خانه پر از مهمان بود و من در حالی که دلم را رنجی بی اندازه می فشرد به هر زحمتی بود باید لبم به لبخندی ساختگی باز می تا همراه فاطم خانم و محترم خانم از مهمان ها پذیرایی کنم از تحسین و تعریف دیگران حالم منقلب می شد و ناخداگاه تصویر محمد با آن خشم در نظرم مجسم می شود. با دیدن قیافه در الهه فکر کردم نکند او هم با آقا مهدی حرفش شده باشد. ولی وقتی جواب مرا هم با لحنی سرد و نگاهی پر از بغض و کینه داد، فهمیدم عصبانیتش تنها از آقا مهدی نیست. صدای هل برای وارد شدن زری مرا به طرف اتاق عقد کشند. زری بی نهایت زیبا توی آن لباس و با آن وقار، چقدر با ذریع آشنای من فرق می کرد؟ چه رمزی توی ازدواج نهفته است که حتی قبل از شروع زندگی در حالتهای های تأثیر می گذارد؟ چند لحظه قصه ام را فراموش کردم و شادی وجودم را پر کرد. چشمهای من به هم افتاد. من قرق تحسین او بودم و او محو تماشای من. با وقاری که از ذری کمتر دیده بودم با سر اشاره کرد که نزدیکش بروم و بعد با نگاهی پر از مهر و تحسین گفت: مهناز، چی شدی؟ دلم نمیخواست بشنوم. گفتم: از خودت خبر نداری. باورم نمیشد اینقدر خوشگل بشی. توی گوشم گفت: غلط کردی باورت نشه. من از اول خوشگل بودم تو خنگی که نمیفهمیدی خنده از ته دل وجود هر دومان را پر کرد صدا زدند که داماد وارد می شود میخواستند خطبه ی عقد را بخوانند و من با عجله از اتاق بیرون رفتم چشمم به خانم جون و مادرم افتاد مادر با رنجیدگی گفت دیگه انگار نه انگار که مادر داری یه سراخ نگیری ببینی ما کجاایی ما؟ صورتش را بوسیدم و گفتم: «به خدا خودم هم الان اومدم. بعد در حالی که از نگاه شیطان خانم جون که از بالای عینک به من خیره شده بود خنده ام میگرفت به پذیرایی از مهمانها مشغول شدم. باید کاری میکردم تا حواسم پرت شود و غمی که دلم را می فشرد به چشمهایم راه باز نکند. عجیب بود؟ با اینکه بد جور از محمد رنجیده بودم از اینکه با قهر از او دور بودم رنج می بردم. حالا این از حماقت بود یا عشق زیاد نمیدانستم خانومی از اقوام شوهر زری با کنجکاوی پرسید معذرت میخوام شما زن برادر عروس خانوم هستی با رویی که نهایت سعیم را برای گشاده بودنش داشتم جواب مثبت دادم ببخشید عروس بزرگشون نه من عروس دوم هستم آها همون که هنوز ازدواج نکرده بله هزار ما شالا. گفته بودن عروسشون خیلی قشنگه فکر کردم باید شما باشین خواستم مطمئن بشم شما خواهرم داری؟ زهرخندی خندی صورتم را پوشاند. دوباره یاد قیافه عصبی و رو گردان محمد افتادم. گرمم شده بود. قصه دلم را بیتاقت می و عشقهایم که جلوشان را گرفته بودم مثل آدمهای تبدار ترم را می در سمت ایوان را باز کردم. هوای سرد و سوز سرما شاید کمی سوز دلم را آرام می سرما یک تا مغز استخانم نفوذ کرد و لرزشی خفیف به جانم انداخت. صدای اکرام خانم که همراه مریم تازه رسیده بودند مرا به خدا ورد. محناز در رو ببند. استخونات گرم سرما میخوری. راست می گفت. استخانهایم یخ کرده بود. برگشتم و خوشحال از آمدن مریم کنارشان نشستم. مریم پرسید. چرا نمیری سر عقد؟ داماد که رفت میرم عکس نمیگیری میگم که وقتی داماد بره راستی محمد وقتی لباس تو دید چی گفت با خشم انگار مقصر او باشد گفتم هیچی چی باید بگه؟ مریم با لبخند گفت همونی که زری گفت شده آره به جای جواب با خنده شکلکی درآوردم و از جایم بلند شدم. پاشو بریم بشه خانم جون. ماما رفته سر اخت. خانم جون تنهاست. حال بیقراری بدی داشتم که قابل تحمل نبود. دلم آرام نمیگرفت و این میان حفظ ظاهر کردن برایم بیشتر از همه چیز سخت بود. مریم از خانم جون پرسید. خانم جون مهناز خوشگل شده؟ خانم جون با لبخندی غرق تحسین و غرور گفت: بچه‌ام خوشگل که بود. میدونم با لباس و آرایش میگم. خانم جون با خنده گفت: خب اون که بله مادر از قدیم گفتن سرخاب سفیداب مرا زیبا کند. لباسش هم که فقط من مات موندم این کیسه یه مارگیری رو چطوری تنش کرده و چطور نفسش بند نمیاد. حالا واجب لباس اینقدر تنگ باشه. خب این همه پارچه و دوخت و زحمت. اگه یک خورد تر باشه چند سال میشه استفاده کرد. این الان یک خورده آب بره زیر پوستش دیگه به درد نمیخوره. مریم خندان گفت. عوضش اینجوری هیکلش ظریف شده. خانم جون با نگاهی ناباورانه از بالای عینک نگاهی به لباس و بعد مریم کرد و گفت: یعنی yani اگه دو انگشت گوشادتر بود دیگه هیکلش ظریف نبود. لا اله الا الله. چه حرفها که ما توی این روزگار نشنیدیم. حسله شنیدن هر چیزی را که مربوط به آن لباس بود نداشتم. انگار چیزی به دلم نیش می زد. از جایم بلند شدم و دوباره سرم را به پذیرایی گرم کردم. فاطمه خانم صدا زد. محنوز جون بیا عکس بنداز. هر وقت آقای داماد رفتن میام. رفتن که محرم و اکس بندازن. زود باش. تند راه رفتن؟ با آن کفش ها راستی که سخت بود. در حالی که مجبور بودم به قول خانم جون خرامان خرامان بروم که نخورم زمین وارد اتاق شدم و فاطمه خانم در را بست. همزمان با من محمد از در سمت ایوان وارد شد. در حالی که سرم را بالا گرفته بودم سعی می کردم چهره آرام داشته باشم. یک آن نگاهم به چشمهایش افتاد. این بار نگاه او حیرت زده بود و نگاه من خشمگین. می میگین. زود سرم را پایین انداختم و در حالی که دقت میکردم پایم را توی صفره عقد نگذارم به سمت زری و حاجقا و محترم خانوم که بالای سفره بودند رفتم. سلام آقا جون چشم شما روشن. حاجقا با سلامی کشیده و بلند گفت. سلام بروی ماهت بابا. هزار ماشاءالله خانوم یه عکسم از من و عروسم بنداز که اگه یه عروس خوشگل توی دنیا باشه عروس خودمه زری با خنده و لحنی رنجیده گفت آقا جون پس من چی؟ آقا جون با مهربانی گفت تو که دخترمی بابا من عروسم و گفتم در حالی که سنگینی نگاه محمد را احساس می کردم. و می نادیده بگیرمش تا با بی اعتنایی تلافی کارش را کرده باشم سرم را به انداختن عکس گرم کردم. هنوز اکس هایم را دارم. یک عکس با آقا چون و محترم خانوم در حالی که بینشان ایستاده ام و دست هر دوشان در دستم است. یک عکس با زری در حالی که صورتمان را نزدیک هم گرفته ایم و خندیم و عکس بعدی محترم خانوم و آقا جون یک طرف ذریع ایستادهاند و من طرف دیگرش محترم خانوم صدا زد محمد، مادر، بیا جلو دیگه ولی من رویم را رو برنگرداندم محمد نزدیک میشد و حیجان من برای آرام و بی تفاوت بودن بیشتر اکاس گفت کمی نزدیکتر، کمی مهربونتر به آقاجون جون پشت سر محترم خانم ایستاد و محمد در حالی که پشت سرمی ایستاد بازویم را رو گرفت. با همه رنجیدگی و ناراحتیم، هم، با همه ی خشمی که سعی داشتم به اون نشان دهم تماس دستش مثل آتشی گداخته بود که مستقیم با قلبم ارتباط پیدا کرد. حرارت دستش و نزدیکی جسمش، قرار و آرام را از من گرفت عجیب بود حالت قهر به جای دفع انگار کششم را به سمت او بیشتر می کرد. ولی هر طور بود باید جلوی خود را می گرفتم نمی خواستم تسلیم شوم. در حالی که دلم نمی خواست دیگران هم متوجه شوند تمام سعیم را برای عادی بودن رفتارم و در عین حال نگاه نکردم به محمد می کردم. فاطمه خانوم گفت: محمد، یه عکس تکی هم بگیرین، یادگاریه. و من ته دل چقدر از اون ممنون شدم. کنار سفره خانم عکاس داشت میگفت که چطور بیستیم. محمد همانطور که پشت سرم ایستاده بود، فشار خفیفی به بازویم داد. سرش را پایین آورد و توی گوشم خیلی آرام گفت: چرا به من نگفتی که لباست فقط اون نیست؟ در حالی که تمام رنجیدگی و خشمم را توی نگاهم می ریختم، سرم را به عقب و بالا برگرداندم و نگاهم به چشمهای مشتاق و پر از محبت و تحسین محمد افتاد. دلم فرو ریخت. فوری رویم را برگرداندم. ولی عکاس گفت، همون حالت اعلانتون خیلی خوب بود. آقا، شما لطفاً با دست چپ کمرشان را بگیرین و با دست راست دستشون رو، شما هم خانم لطفا به حالتی که انگار به کنار سینه شون تکیه دادین بیستین و سرتون رو به سمت صورت ایشون بالا بگیریم. با لبخند توی چشمه هم نگاه کنیم؟ آها، همینطور خوبه. چند لحظه صبر کنیم؟ آماده؟ خدا می در آن چند ثانیه چه حالی داشتم. نگاه پر از مهر محمد رو می دیدم و گرمای لبخندش. حرارت تنش و ضربان قلبش را زیر بازویم حس می کردم و خودم با تمام وجود می خواستم خون سرد باشم و اختیارم را از دست ندهم. آن عکس هنوز هم جزو قشنگترین عکس های گذاشته است که از دیدنش خونی گرم توی رکایم می و همان حس آن روز را پیدا می کنم. هیجانی سرکش از عشقی که می خواستم مخفیش کنم و مهری که با زجر میخواستم لابلوی خشم از دید او پنهان بماند. عکس را گرفتم. بدون لحظه ای مکث، بازویم را از دست محمد بیرون کشیدم و بدون اینکه نگاهش کنم از اتاق بیرون رفتم. در حالی که سنگینی نگاهش را که ایستاده بود و نگاهم کرد، احساس کردم. آن شب چه حال بدی داشتم. بیقرار و دلتنگ بودم. تمام وجودم محمد را می تلبید و در عین حال نمیخواستم ببینمش حیجان روحی با سوزش گلو و سردرد و خستگی زیاد همراه شده بود تنم داغ میشد و یخ می کرد و من بیتاب خدا خدا میکردم مهمان ها زودتر بروند